به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده محمد علوی سلام و عرض عدب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال هزار افسان با شما هستیم با یکی دیگر از داستانهای کتاب فرهنگ افسانه‌های مردم ایران و اما این داستان تاجری که پولش نصیب اصالی نجار شد این داستان از قصه هایی هست که دید تقدیر گرایانه در اون به خوبی مشهوده در این حال که این تقدیر گرایی به خدمت مزمت خصاصت گرفته شده یکی از خصوصیاتی که توی قصه ها نکوهش میشه و یا به سخره گرفته میشه خصاصت هست تاجری بود که هفت خوم خسروی پول داشت خیلی خسیص بود طوری که فقط شبهای عید پلو میخورد و بقیه اوقات رو نون و پنیر و سبزی میخورد هر وقت هم که زنش به اون اعتراض میکرد در جواب میگفت من همینو دارم میخوای بمون میخوای برو روزی رفت سراغ خمها تا پول برداره و خرید کنه به سراغ خم اول که رفت ناگهان صدایی شنید که میگفت دست نزن مال اصالی نجاره رفت سراغ خم دوم همین صدا رو شنید. به سمت هر خوم که دست رو دراز میکرد صدا رو میشنید. تاجر گفت او دیگه چیه؟ صد سال زحمت کشیدم تا تونستم سمینا رو جمع کنم. حالا مال او نجار شده؟ از زیرزمین بیرون اومد و رفت یک چنار بزرگ خرید. اون رو داد به خرات تا میون اون رو خالی کنه بعد اون رو برداشت و به خونه برد پول ها رو میان چنار ریخت و سر و ته اون رو غیر گرفت بعد چنار رو برد کنار دریا و قلا توی آب دریا بعد گفت حالا اوسالی نجار بیاد و پولشو بگیره تاجر به خونه برگشت پیش خودش گفت این چه کاری بود من کردم صدا رو شنیدم که شنیدم نشست به فکر کردن و ناگهان زد به سرو سر چنار با جریان آب رفت و رفت تا رسید به رودخونه و گیر کرد به چنگک تور ماهیگیری که تور انداخته بود تا ماهی بگیره ماهیگیر چنار رو از آب در آورد و برد به شهر تا بفروشه او علی نجار چنار رو خرید و به خونه برد یک سال گذشت شبی او مهمون داشت و رفت که تکه از اون چنار رو ببره یک مقدار از اون رو که اره کرد پول ها رو دید وقتی مهمان ها رفتن او اومد و پول داخل چنار رو ریخت توی گونی و برد داخل زیرزمین گذاشت از فردای اون شب کار اوسالی بالا گرفت و مهمون ای درست کرد و در اونجا از آدم های قریب پذیرایی کرد. روزی تاجر که در به در بیابون ها شده بود و خوراکش علف بیابون و میبه های جنگلی بود وارد شهر اوسالی نجار شد. دید که اوستالی توی دکانش نشسته و قلیون میکشه. گفت به منم میدی بکشم او سالی گفت بفرما و بعد که فهمید قریبه اون رو به نهار دعوت کرد تاجر موقع نهار یک لغمه بزرگ به دهانش گذاشت اما هر چه کرد نتونست اون رو فرو بده ناچار رفت و در درگوشهی لغمه رو بیرون انداخت او گفت چرا نهار نخوردی؟ تاجر گفت برو یک مقدار پول قرض بگیر و با اون برای من غذا بخر بعد دلیلشو بهت میگم اوصا علی رفت تو از چلوکبابی کبابی غذایی نسیه خرید تاجر نشست و خورد بعد هم گفت اون غذایی که تو درست کرده بودی از پول من بود برای همین از جلونپاین نمی نمیرفت. اون وقت همه ی رو برای اوسالی تعریف کرد. اوسالی دلش به حال تاجر سوخت. گفت من مقداری پول قرض میگیرم و به تو میدم تا کاسبی کنی. از این به بعد هم به خودت سختی نده. تاجر قبول کرد. اوسالی مقداری پول قرض گرفت و به تاجر داد. تاجر هم پس از سه سال در بدری به خونه و زندگیش برگشت. دکانی باز کرد و از اون به بعد مرتب یک شب در میون برای زنش پلو میپخت خب همراهان عزیز به پایان این داستان رسیدیم. امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.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 همه و همه و همه در کانال تگرامی هزار افسان داستانهای های افسانهای صوتی سانین مهران دوستی،